کتاب فرهنگ های مردم ایران جلد سه نویسندگان علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده محمد علوی سلام دوستان بزرگوار با شما هستیم با یکی دیگر از داستان کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران امیدوارم تا پایان این داستان کوتاه ما رو همراهی کنیم و اما این داستان چهل کلید پادشاهی بود که هفت پسر داشت. روزی پسرها به شکار رفتن. اونها با همدیگه عهد کردند که چنانچه یک شکار از کنار هر کدوم از اونها حرکت کرد همون شخص باید به دنبال شکار بره. در این هنگ آهوی رو دیدن اون رو دوره کردند. آهو از کنار کوچیکترین برادر فرار کرد پسر کوچیکتر اون رو دنبال کرد آهو به تپهی رسید و در اونجا ناپدید شد پسر به بالای تپه رسید و دید که پیرمردی اونجا نشسته چون که شب شده بود و جوونم خسته بود از پیرمرد خواست که به اونجایی بده تا بخوابه پیرمرد اون رو به خونش بود. جوون توی خونه پیرمرد تصویر یک دختری رو دید و به اون دلباخت. از پیرمرد نامونشون صاحب عکس رو پرسید. پیرمرد گفت: رسیدن به اون کار سختیه. باید تو هفت دیو بکشی تا به باغی برسی که در اونجا یه گربه است که یه دسته کلید چهلتایی به گردن داره. وربرو باید بکشی و در اتاقها رو باز کنی دختر توی اتاق چهلومه شاهزاده صبح فردا به سمت اون باقی که دختر اونجا بود حرکت کرد اون هفت دیو رو که نگهبان باغ بودن کشت در کنار دیو هفتم کتابی پیدا کرد اون رو خوند تلسم ها رو شکست و اسیر آزاد شدند. شاهزاده خودش رو به پای دیوار باغ رسود دید که گربه بالای دیواره دو تا تیر خطا به سمتش زد اما تیر سوم گربه رو کشت کلیدها رو برداشت و در اتاق ها رو باز کرد توی اتاق چهلم بود که دختر را دید و بلبلی بالای سرش آواز میخوند جوون انگشتر خودش رو به دختر داد و به پیش پیرمرد برگشت پیرمرد به اون گفت فردا پادشاه جار میزنه که هر هرکس انگشتر خودش رو به دختر من داده بیاد و با اون ازدواج کنه البته اون شرط میگذاره برای این کار جوون فردا پیش پادشاه رفت. پادشاه به اون گفت تو باید شرط من رو انجام بدی تا بتونی با دخترم ازدواج کنی. اما اگر نتونستی اون وقت گردنت رو میزنم. پسر شط رو پذیرفت. پادشاه به اون گفت من چراغی روی سر گربه میگذارم. تو باید کاری کنی که این چراغ از روی سرش بیفته. پادشاه چراغ رو روی سر گربه گذاشت. جوون اتیکه غذا انداخت جلوی گربه. گربه جستی زد تا اون غذا رو بگیره چراغ از روی سرش افتاد. به همراهتی جوون شرط پادشاه رو انجام داد. و تونست که با دختر اون ازدواج کنه و به دیار خودش بره اونها هفت شبانه روز جشن گرفتند. خب همراهان عزیز امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. تا درود دیگر بدرود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها حبیت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه بسههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده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 ادساین مهران دوستی